خوب سوال نذید بسم الله الرحمن الرحیم و یومه برسه بسم الله الرحمن الرحیم و یومه نحشرهم جمعاً سمت نقوله للذین عشارکو مکان انتم و شرکا اکم فزیلنا بینه وقال شرکا ما کنتم ایانا تابدون عبارات از نظر لفظی اگر بازش بکنم از لحاظ معنا خیلی مشکلی نخواهید داشت. و یوم وابش واب استنافی هست و یوم هم مفعول ازکر مقدره یعنی ازکر یوم هم مفعول به ازکره یعنی چی؟ یعنی یاد آور روزی را جمعه نحشر و مزافان رایه یومه نحشر و هم نحشور و هم فیل و فایل و مفعول نحن و جمیعا حال است از برای هم یعنی همشون و ریز و دروش محشور میکن سمه سمه حرف یعنی یه مدت طول میکشه اینا رو محشور میکنیم بعد سمه نغولو لنزین عشرکون نخلو فلوفایل لذینا متعلق به نخلو. اشرکو سلیع لذینا باش آیده فایل و آید. بعد میگیم به کسانی که مشترک شدند برای خدا شریک گرفتند به مشرکین میگیم مکانکم این مکانکم اسم فد. یعنی سر جاتون است. مکا نکن اسم فعل ضمیر انتم توش قائلشه این انتومی که شما میبینید تاکید بر اون انتومیه که توی بگید اسم فعل مستتره مثل اسکن انت و زوجو کل جننه اسکن انت این انت زمیر است تاکید بر اون انتایی که تو اس کنه انتم و شرکا کم و شرک و شرکاکم عد شود به جای اون انتم داخل بگید مکانکم برای اینکه ما بتونیم به اون عد کنیم ضمیر منفصل رو باید بیاریم متوجه شدید یا نه مثلا اس کن انت و ذو جوکه الجنه و مز مرلف الذی قد انفصل اک به کل ضمیر نتصر ما این زمیر منفصل را بردیم انتون رو برای که بتونیم بگیر عطف کنیم با واقع شرکا و گم رو به اون انتمی که داخله مقانه یعنی شما عطف بخواید بکنید به زمیر مرفوع باید یا با زمیر منفصل فاصله بندازید مثل اصکن کن و زوج کل جنده یا باید فاصله با شکل دیگری تورد بگیره فاصلون ما با فاصلون ما یه فاصله که هرچی میخواد باشه الان سه تا آیه میگم منویسید از اسکن، انت و زوجو که الجنه درست شو. الان زوج که هم میخواست بشه به جای فایل از کن انتش کار کرده فاصله کرد این قسم اولش این الان مال ما از این قسمه یا ممکنه فاصله زمیر منفصل نباشد فاصلون ما تعبیر میکنن نهات باشه. مثل این آیا بنویسید به جنات عدنین یدخلونها و من سلحم الان من اتو جای واقع یدخلونه است و من سلحم الان من اتو جای واقع بگید یدخلونه ولی فاصله شده فاصله به وسیله چیه؟ زمیرها یدخلونه ها یا مثل این آیه ما اشرک ما اشرک ولا آبا اونا آبا اونا اطف به جای بگی نای اشلکناست ها چی فاصله کرده چی فاصله کرده لا لا یسائده ها ولا فاصله حالا این ور باشه اسم باشه زمیر باشه یا اون ور باشه حرف باشه زایده باشه فرقی نمی کنه فاصله بیافته درست و یا زمیر منفصل فاصله کنید با یکی از این شسته شکل شما میتونید می کنید و لاحت کردن درست مکانکم انتون و شرکا اکم میگه به این مشتکیم میگیم سر جاتون وایسید شما و شریکانتون اونایی رو که شریک خرار دادید شرکا رو کن ففه یعنی چی؟ فزیلنا فزیلنا و این زیل فیله ماضی آمده معناش مستقبله ها به جای همون نه شده نبود منباب تحکید ماضی شده شد از شکل ماضیه یعنی فنوزینا نشد فزیل بین هم یعنی به طور یقین بینشون بگی تفرقه می دازیم. بین بینی کی؟ چی و بین اینها و بگی شریکانشون آه؟ بین اینها و خدایانشون زیلنا یعنی ازاله وصله میکنید کنیم بین عابد و معبود جدایی مندازیم زیلنا بین هم بین هم متعلق به زیلناست و قال یعنی و یهول از وجه زیلناست و قال شرکا ها هم میگیم شما وایسید شرکایتون هم گویا شرکا داشتن میرفتن این دنبالشون همه با هم گفتیم وایسید بعد جدا میشن حالا که جدا کردیم قال شرکا و هم. اونهایی رو که تو این دنیا اطاعت میکردن عبادت میکردن قال شرکا او هم شرکا اینها به اینها میگن آه <تصفيق> یعنی قال شرکا او هم لبون اینها به اینها میگن چی میگن؟ میگن ما کنتم ایانا تابدون ها ما کنتم ایانا بگید تابدون شما هرگز ما رو عبادت نمون شما ما رو عبادت نکردید درست شده نه شما شیطان رو عبادت کردید اطاعت کردید ما رو عبادت نکردید کنتم تم اسم کنتم تعبدون خبرش فعل مزاره یعنی تو طول مدتتون تو دنیا شما بگید ما بادت عبادت نمی کردید براعت می از اینها ما کنتم ایانا تعبدون ایانا درست شده ها. مقدم شده ها هم سجعه درست کرده هم حسره یعنی شما فقط رو که عبادت نمیکنش شما شیطان عبادت میکنید ایانا مفهول تعبدون ها اون مسئله محدم شدنش برای رعایت فاصله و سج صد درصده صد درصد که با خالدون و بعد و قبل با هم همه هنگ یعنی شما ما رو عبادت نمیکنید. حصرش حسرش مبحثه که بگن فقط ما رو عبادت نمی کردید. بلکه شیطان رو عبادت می کنید اینا می نفی عبادت کنید یعنی شما اصلا با ما کاری نداشتید فکفا فکفا بله شهیدن بیننا و بینم این فکفا قاله شرکاوه ما کنتم ایانا تعبودون شما ما رو عبادت نمی کردید فکفا بله شهیدن بیننا و بینم پس کافیست خدا این بله با باید زاید است شهیدن حال است بعضی اون غایلن تمیز است ولی تمیز گرفتن بهتر است خدا بس است از جهت شاهد بودن بیننا و بینکم یعنی خدا میدونه شاهد بین ما و شماست که شما ما رو عبادت نمیکردید بیننا متعلق به شهیدنه بینکم عطف به جای بیننا کمه میخواسته عطف کنه به جای نا عطف به زمیر مجرور باید اعاده اجار بشن بشه لذا بین برابار دوم تکراش خدا به عنوان شاهد بین ما و شما کافیست این کن نا ان عبادتکم لغافلین این کن عن ان عبادتکم لغافلین این این مخفف هست مسبل است. این این مخففه است بگید مصقه هست اون لام لغافلین اینو میفهمونه که بشه لام فارقه داد شد این کن نا ان عبادت کم ان عبادت کم متعلقه به غافلینه خوب. این استیناف بیانیه ترجمهش میشه چی؟ زیرا به یقین ما از عبادت شما چه بودیم بگید آفل بودیم ما با عبادت شما هیچ کاری بگید نداشتیم شما داشتید شیطان رو عبادت میکردید ما اصلا با عبادت شما کاری بگید نداشتیم مگه ما بودیم بیاد شما ما رو عبادت کنید شیطان شما رو به بیراه آورد این کننا ان, ان عبادت کن یعنی عن عبادت کن ایانا در ظاهر نقافه دیم خب مطلب این هم این مخفف از مسقله بود استیناف بیانی فکفا به الله شهیدن بیننا این فاهم پای نتیجه بود یعنی قال شرکا و هم ما کنتم ایانا تعبودم شما ما رو عبادت نمی کردید بنابراین خدا بین ما و شما کافیست زیرا زیرا ما از عبادت چرا میگیم خدا بین ما و شما کافیست؟ یعنی ما خدا رو شاهد میگیم که شما ما رو عبادت نمیکردیم چون ما اصلا از عبادت شما خبری نداشتیم ما نگفته بودیم شیطان شما رو به گروه به این راه کشیم بود. پس شما داشتید اطاعت شیطان میکردید هنالکه هنالکه اسم اشاره مکانی جمع شریکه بله،, بله بله این الان از این و قال شرکا و هم یک بار به اینها برگشتن گفتم ما کنتو میگی آناتر بود شما که ما رو عبادت نمی کردن. بنابراین کافیست بین ما و شما خدا غذابت کنیم خدا به عنوان شاهد کافی شو؟ زیرا ما اصلا از عبادت شما خبری نداشتون شما داشتیم؟ ها. اطاعت شیطان رو می جد هنالکه تبلو هنالکه تبلو کل نفس ما اصلفت و بد و ردو الالله مولاهم الحق و زل انهم ماکانو یفت استیناف بیانیه خب چی میشه؟ این بگو مگو بین اینا اتفاق میفته چی میشه؟ میفرماید هنالکه تبلو در اینجا یعنی در این زهرای محشد در این قیامت هنالکه ظرف است محبور افیه است برای تبلو تبلو کل نفسه کلو نفسه فائل تبلوست همه همه کل نفسه تبلو کلو نفسن ما اصل فرد. آه این ما مفعول تبلوست یعنی در این زمان چی در این مکان تبلو تبلو بلا یبلو یعنی آزمود می آزماید یعنی می فهمه یعنی تختبه رو مشخصه یعنی میچشه یعنی به دست میاره هر نفسی ما اصلفت آن چرا که بگو هر کی درو میکنه اونی رو که کاشته کل نفس ما اصلفت یعنی ما اصلفتو آن چرا که پیش فرستاده هر کسی به عملش میرسه در این لحظه است که هر کسی به عملش بگید میرسه و ردو دونه الله رود دونه مازی آمده این تعبیر مزار مازی مازی مزاره ها این خودش تفنن در عبارت هم تأکید رو داره هم جلب بگیر توجه رو میکنه قاعدتا باید اینطور باشه خونه تبلو کل نفس ما اصل یعنی ما اصل فت خود و نیل دونه الله مولاهم و باز گردانده می به سوی خدا خدایی که مولای این هاست و حق حق صفت مولاست مولا بدل است از الله یعنی ردو الله یعنی ردو الال مولا هم مولا هم خدا بدله مولاهم از الله الحق صفت مولاست به پیشگاه مولای حقشون کشانده میشن برگردانده میشن و زل و زل باز فیل ماضیه ها ظاهر ماضیه باطن بگید زل ان هم ماکانو یفترون یعنی ماکانو یفترونه ها آیده سله چی شده؟ حس شده؟ زله اینجا به نظر میاد چون با انم اومده قاب است. یعنی وزله انهم ماکانویفترون تمام آنچه را که افترا بستند به خدا تمام افتراهاتشون دو اون دنیا بگید از به همه آنچه که داشتند دود میشه و میره هیچی بر دست شما دست خالیست تویی دستم هیچ زادی نداره و زل عنهم ماکانو بگید یافتو چون شو با ان اومده یعنی زا زا یعنی گم شد با زاد عین یعنی خاوه یعنی پنهان شد یعنی چیزی از اینهایی که بگو میخوندن افترا بستن از این بودها دیگه چیه گم میشه منظور یعنی چی بگید دیگه جلاشششون نیست تباه میشه از بین میره آقا خدا رو میخوای برای موقعی که تو سختی افتادی تو سختی که افتادی به داده برسه اینا تو سختی افتادن ردو الالله مولا همون هم هنالکه تبلو کل نفس ما اصلافت حالا که سر اوضاع سختشونه و قام عنهم و, و زل و ذا عنهم تمام اونایی که ادعا میکردن که اینها رو ما میارین برای اینکه دستگیری از ما کنن همشون بگید گم میشن همشون تباه میشن همشون غیب میشن, میشن هیچ کدوم وجود نداره فقط وردو در عربی ولی مضارعه براناشه یعنی و يردون چون حتفه به جای تبلوست دیگه کل کل کل اون علفی که بعدش نوشته شد اون واو لامول فعله بل. بلا یبلو سیغه اول فعل مزاره مخاطبه چیز سیغه اول فعل مزاره این سیغه چارمه یبلو یبلوغانه یبلونه تبلو این واوی که بعدش نوشت الف اومده این واقع جمع نیست اون الف رسم الخط قرآنه رسم الخط قدیمه طبق رسم الخط جدید الان بعد از اون واقع الف نباید نمشه باشه خب پس بنابراین از این آیات چه به دست میاد این که تمام شریکان در قیامت همشون گم میشن و هیچ کدوم همه هم تبری می جویند و میگن شما ما رو عبادت بگید نکردید ما با شما کاری ندارید شما ما رو عبادت نکردید خب نگاه کنید ببین اگر در عبارت چیزی هستش که شما پر روزی خوب. بله بله یعنی آه. اون مولا میشینه جای الله دیگه بدل دیگه بدل میشینه جای مبدل می. اصلا کار بدل اینه که بشینه جای مبدلان اون م تو بعضی از ها به جای تبلو هستش تطلو تطلو اگر باشه تلاویتلو یعنی پیروی کردن معناش چی می شون هنالکه تطلو کلو نفسه ما هر کی دنبال عمل خودش را میفته افته آه. درست یعنی میرسه به عملش تو بعضی هم روایات تطلو رو تو بعضی از این قراعته که تطلو گرده از تلایتلو گرفتم یعنی قرائت کردن آن؟ اما ما اصلافت میشه نامه عملش که البته تلافت برای کتاب های این محنا رو گرفتن ضعیف. حالا قراعت رو من گفتم برای خاطر که من از دار عدبی به لغت نسیش بلا قراعت مشهور تبلوست تبلو کل نفسه ما اصلافت اصلافت یعنی قدمت زیلنا بینه هم زیلنا بینه یعنی فرقنا بینه هم زایلنا یعنی بگید فرغل یعنی ارتباطاتشون رو بگید قطع میکنیم چشمشون رو بگید باز میکنیم ها قل به پیامبر میفرماید بگو من یرزقکم من السماء ولا من یرزقو کن من از سماه یرزقو فیل مزاره ها درست بر استمرار داره من یرزقو کن من از سماه بله من یم له کردم اولا و من یا و من یا خروج و من الحي و دبر این ای مطلب دیگه است سببیت یا فای فسیح است جالا الان میجیم فعلا توی لغت بیایم حل مکنیم کارمونو بعد این شادم قل من یرزو بکنم کی به شما روزی میده من از سمای ولعرز از این آسمان و زمین ها. از آسمان کی باران میاره از زمین کی میرویاند این بطهان دلچه کی به شما داره روزی میده این بوتها داره روزی میده به تو این من از از سما مقدم کرد چون اصل نیوت از اون بالا میاد در زمین میروی این این سما و عرضو هم که گفته خواسته تأکیدش بشته بلا میتونست بگه من یه کنم کی به شما روزی میده این آسمان و زمین رو گفته خطورت کار اون سختی و اون با قول خودمون عظمت الهی رو در روزی دادن با این من از سماه ول عرض کار کرده کی از آسمان و زمین براتون روزی تهیه میکنه عمن گفت اینو بهشون بگو، این سوال عم من یملک اول عبصار این عم ام عم متصل است یا منقطع کدومش متصل حرف حذف منقطعه به معنی بله منغطه هست به معنی بل. بل یعنی بل من یمله کستم اول ابسار کی مالک چشم و گوش شماست؟ کی چشم و گوش شما رو بگید؟ افس نشد بگوید کیه که داره این کار رو میکنه من یملکو از سمعه یعنی سمعه کم ولی افساره یعنی افساره سمعه هم با الفلام اومده به معنی جمعه ها یعنی گوش های شما و چشم های شما منفصل همه است. هست شو به معنی بله به معنای چیه گفتم؟ بله بل. خب ام من یملکو از نظر رسم الخطی باید چجور بنویسن ام منو اما جدا بنویسم منو جدا باز این رسم الخط قرآنیه ام من یملکو این مالک گوش های شما و مالک چشم های شماست یعنی چی؟ یعنی حمایتشون میکنه حفظشون میکنه چون چشم و گوش بالاترین نعمت خدا در بگید آه کی این چشم و گوش رو برای شما افس کرده خدا اما شما با این چشم و گوش خدا نمیبینی دارست ان این اول و سر اول فا کلولای که کانه انه بعضی هم گفتن یملکو اینجا به معنی یخلقوست این؟ چه کسی می آفرینه چشم و گوش بر شما ولی خب اون موقع یملکو یه مقدار نه, نه اصلا به ببینیم یرز و خود فعل مزاره درات بر استمرار ده یعنی خدا داره مدام بهتون روزی میده. ولی خدا مدام چشم و گوش ما رو بگیر، حفظ میکنه احضا و جواره ما رو داره حفظ میکنه یعنی الان من و شما نشستیم آه. درسته؟ یه سری اعمالمون ارادیه اما در پیکره من وجود من داره همینطور بگید یه مدیریت مرکزی داره اینا بگو اداره میکنه خوندسانی به چشم حفاظت از چشم ها؟ انوا و اقسام به قول خودمون اعمال شیمیایی و اعمال مختلف داره در بدن انجام میشه تا این پیکره بگید کی شما رو اینطور داره به قول خودمون حفظ میکنه کی شما رو سعی و سالم نگه داشته تحبیر به سم او بسر در واقع به اعزاست کی این اعزایش خودت اینطور اعضای خودت قشنگ نگه یعنی کلیات داره کار میکنه روده داره جذب میکنه معده داره هضم میکنه قلب داره میزنه آ تمام آنچه که داره اتفاق میفته ذهن داره بایگانی میکنه از بایگانی مطالب رو بیرون میاره همه این کارا رو خودت داری میکنی؟ کی داره انجامه؟ اما یملکو یعنی یحمی یعنی یحفظو یعنی سنو، کی داره حفظ میکنه از آفات اعزا و جواره تورو؟ مم. و من اتفاست به جای من قبلی و من یخرجل حی من المیت و یخرجل میت من الحی کیه که هی داره آفرینش رو انجام میده یخرجل حی من المیت از این طبیعت مرده ها سلول های زنده تولید میشه انسان به واسطه ی نطفه پدر و مادر داره تولید میشه داره آفرینش انجام میشه کی این زنده ها رو از دل این طبیعت داره بیرون میاره اون چیزی که باعث میشه روح دمیده شه و این حرکت کنه کیه من یخرجل حی یمنال و یخرجل منی یتمنال حی چه اتفاقی میفته که بگو چی چیزی کم میشه این پیکر یه دفعه وای میسته یو خروجیل هاییمینال میگید و یخ خروجیل مییتامینال های سانه صنعت عکس داره. چه عکس؟ اول های مقدم شده بعد نه اون که خب مشخصه؟ یعنی حیات وقتی داره نه داره به میگه نه نه نه. حَی فهمیدم چون یعنی مقدم خب گفتم واسه خاطر چی این آیه داره چی میگه داره عجایب خلقت میگه در عجایب خلقت حیات از دل ممات در بیاد عجبش بیشتره یا ممات از دل حیات متوجه چی گفتم یا نه یخرج الی یمین المیته و مخرج ال تو جایی مخرجه و یه اخرجه میت همین الحی البته حی و میت رو تو تفاسیر مختلف گفتم بعضی هی و میت رو به آدم هدایت شده ای که از دل پدر و مادر مرده در بیاد ظالم چطور میشه که یک فرزند صالح از دو ناسالح در میاد و یه ناسالح از دو صالح چی این کار بشد و تعبیرات دیگری هم باز داره یخرج ال من و انسان از نطفه ایجاد شده از همین بقول معروف اعضا از همین موادی که در طبیعت موجوده این میاد تبدیل به یک سلول زنده میشه و این سلول زنده تکثیر سلولی پیدا میکنه و حرکت خودش انجام میده چطور میشه که این الان دیگه از عجایب واقعا عجیبه از نظر خلقت این آفرینش یک سلول بارور شده آ و جذب اون در رحم و تبدیل شدن به یک پیکره انسانی با همه این یعنی مقدار عصب و مقدار رگ و استخوان و, و این دیگه اعجاب خلقت الان واقعا عجیبه یعنی از دل طبیعت حیات بیرون میاد از حیات یعنی در واقع یهی و یومیت انگار گفته من یهی و یومیت کی زنده میکنه کی نیمیرانه منظور از زنده کرده یعنی این طبیعتی که داره این طور موشمندانه این طبیعتی که این تو خوشمندانه داره رو به جلو حرکت میکنه ها این طبیعت خوشمندانه رو کی این کارو میکنه بودهای شما داره این کارو میکنه شریکان شما دارن این حیات خوشمندانه رو اداره میکنه بعد به پشتش میفرمایا چی و من اینجا منو باز تکرار کردم و من یدبر و الامر الامر الافلام داره بی دبران چه کسی تدبیر همه این هستی رو داره میکنه هر امری داره تو این هستی اتفاق میفته کی داره این کارو میکنه <تصفيق> علطنام جنسه یعنی کل امر این فلان امر خلقت امر حیات امر ممات این در واقع بگی ببین این گوش فرمایی اول برگشت گفت چی کی به شما روزی میده درست خب در واقع کی شما رو شفا میده اونم هستی که عظام مریض تو فقو و, و یشفی این نمونه ایشو روزی دادن ذکر کرد درستو من یم له از صب کی چشم و گوشو گفتیم این نمونه است از اعضاء و جوارح شما رو بگید این تو دقیق درست کرده که حبس میشه کی اصلا حیات به شما میده، ممات به شما میده، این هستی رو کی داره؟ این آخری در واقع، و من یادم بروله ام مجموع اینه. گفته کی این کار میکنه، کی این کار میکنه، کی این کار میکنه، این کارها نمونههایی از بگید تدبیر الامح آخرش گفته و من یادم بروله ام کی تدبیر کل هستی رو میکنه؟ این هستی با همه یه بگو استواریش کی داره ادارش میکنه؟ و من یادب برال امرم این برام نه نه نه این طور نیست امر در اینجا به معنایه بگید کاره عمله درست شد فعله من یادب برال یعنی کل این عوامر الهی رو که انجام میده اون به کل امرن که تو سوره اینا انزلنا هست همین طوره تو قرآن جای دیگر هم داره یوفستلال آیات یدبرال امر که یدبرال امر یعنی اون چی که تو هستی داره اتفاق جمعش بیشه عوام برون کی این کار این اون یه بحث دیگره من جایی رو که دارم میگم با این شکل علفلام اومده یا به شکل من کل امرن که کل آمده جای علفلام اینجا به معنای آنچه است که در هستی داره اتفاق میفته کارهایی که داره تو این طبیعت تو این دنیا انجام میشه یدب برو اینها رو تدبیر میکنه اینها رو میچیره پشت سر هم این هوشمندانه داره جهان هستی میچرخه این نظم نازم میخواد پس این منیرز و حکم یعنی کی این کار میکنه میخواد اینها رو با برهانه بگید نظم آشنا کنه که این نظم هستی این نظام هستی نیازمنده به یه خالق داره بعد خدا میگه فسَیَقُولُونَ الله این فسَیَقُولُونَ بعضو میگن فاء فای سببی است یعنی پس جواب میدن به شما خواهند گفت یعنی اگه تو سوال کنی بهت میگن بعضو میگن فای فسیه است فای فسیه یعنی یه چیزی قبلش بگید هست شده یعنی انسالتمو هم انسالتمو هم انهازا اگر از این چیزها ازشون سوال کنی انسالتمو هم انهازا فسیغولون هم فسیغولون پس فس خواهم فای فسیه باشه یا فایه بگید نتیجه باشه سببیت تفریع تحلیل فرقی نمیکنه یعنی پس جواب خواهند داد الله و این یعنی الله و کلم است خب اینجا الان مقول قول مقول قول باید چی باشه بگید جمله باشه اینه چی بگید؟ بگیم بگیم الله و مبتدا یفعل و کل ذلك میشه یا فعلا کل لذال خبر بگیرید که مفید هست بشه یعنی چی؟ یه وقتی که شما فرض کنید میگید که نحنو نرزوکم و ایاهم این نرزوکا وقتی خبر شده مفید هسته مثل کی راودت میان نفسی که تو صورت یوسف و مواردی آنها و به بتوانید فایده ماله میگم مفید هسته اگه بگید بوده الله و یفعل و کل یعنی چی ترجمهش میشه؟ خدا فقط همه اینا رو میگه جواب میدن خدا فقط همه اینا رو انجام میده یعنی بوتها کاره ای بگید نیستن از بوتها چی زیدن؟ نه اینکه بگید الله فایر فعل مقدره یعنی یفعل و زالک الله فعل هست شده جمله خبر هست که مفیده هست کشو که الله و خبر قرار دادن یعنی الله و خبر دادن نه الفایل و لزالکه کلهی الله تقدیرش قشنگ نیست ولی اگه فعل مزاره بگیریم با اون استمراری که تو یرزوه یا دبرو هست و اون حسری که خدا میخواد جور در میادن پس تقدیر باید مطابقه با متن تقدیر گرفت تقدیر اینجا الان بعضی میگن بوده یفعل و زالکه الله گفتیم این خوب نیست چون مفید حصر بگید نیست بعضی گفتن الفائل و لزالکه کلهی بگید اللهو مجبور شدن یک کلهی هم تقدیر بگیرن تا بکنن الله خبر گفتیم نیش کنیم اینا مطابق در نمیاد بلکه بهترین اینه که بگی اللهو یفعلو بگید, الله بگید. زالکه الله یفعل ذلك یعنی یفعل الامر خدا این کارو میکنه فقط فعل مضارع ام فقل فقل افلا تطغون این خبر یعنی وقتی اینطور جواب دادن پس بگو افلا تطغون حالا از یه چنین خدایی بیم نداری مخالفت با او ترس نداره این همزی استفهام اینجا واسه چیه ببینید بر فا مقدم شده ها چون صدارت تام مداره بوده فع علات هتقوم بنابراین حالا که خودتون اعتراف دارید که این کارا کار خداست کاریش دیگه نیست علات هتقوم انکار بگید توبیخیه پس چرا نمی ترسید پس چرا آدم بگید نمیشید بچه را نداری؟ ندارید استفهام انکار چی چیه بگی؟ توبیخی استفهام انکار توبیخی اونیه که ما بعد حدات استفهام واقع شده ما بعد حدات استفهام واقع شده و متکلم داره ملامت میکنه و متکلم داره فائق رو ملامت میکنه مثل اطا عبدونم ما تنهتون از تعبدون ما تنهتون هم یعنی چی؟ یعنی آیا عبادت میکنی همونی که خودتون میتراشید؟ حالا اونا این کارو میکردن یا نمیکردن؟ میکردن و داره اون رو به خاطره بگو این عبادتشون ملامت میکنه استفهام امکاره امکاره نباید این کارو میکردی توبیخی یعنی چون کردی توبیختون میکنی فائل داره اون متکلم توبیخ میکنه استفهام انکار بگید توبیخ اینجا اونا عدم تقوا دارن عدم ترس دارن از یک جنین خدایی توبیخشون میکنه میگه شما چه اینجوری هستین بنابراین ها پس بگو آیا خجالت نمیکشید فقول ها فقل افلا بله بله نه ببینی قبل اون فای فقل اتفاست بزنی قول افل این جای خودش دارد شد اون فای افلا تتقون خب اون در واقع معقول قل شده این فا فای فسی هست یعنی این امر امرو حاکزا اگر مطلب اینه این تقول و حاکزا اگر اینطور میگید افلا تدقون پس خجالت نمیکشید حالا که چنین دارید میگید پس شما بگو یعنی حالا که برنامه چنینه شما نمیخواید پس خجالت بکشید نمیخواید حقو بفهمید اون فای افلا تدقون صد درصد فای فسیح هست یعنی چی بوده؟ بوده امکان على امر و حاکزا امکان امر امر کما تقولون اگر مطلب همونیه که شما میگید یا امکان ال امر اگر مطلب اینطوره که شما دارید اعتراف میکنید افلا تطقون پس شما نمیخواید خجالت بکشید نمیخواید به نمیخواید آدم بشید درست شو؟ اول که میشه اون فای یا قولون گفتن فای نتیجه یا فای فسیه درود شد هر دوش احتمالش هست نتیجه بهتره اما این فای افلا تتقون صد درصد باید فسیه باشه درود شد گرفتید یعنی یه جمله قبلش چی شده حذف شده درود شد. یعنی اینطوری بوده این کان و امرو طرفون اگر ان همینطوره که شما گفتید اعتراف کردید ها مثلا اینه این فاقای نجزه میشه میشه افلا طرفون پس شما نمیخواده به ترسید ها برود شده نه ماشخص شد؟ پس بنابراینی حالا بعضی هم به جای این جور دیگه تقدیر گرفتن دل رو علا حال این فا این فا فای فسیح هست نشون میده این قبل حذف شده چیزی حالا آیا اونی که حضب شده جمله شرطیه بوده؟ درست یا نه بعضی میگن اینطوری بوده ات ها درست فلا بگو. تر درست شد؟ در هر حال اینجا یه چیزی افتاده. یعنی آیا اعتراف می‌کنید و خجالت هم نمی‌کشید؟ متشکرم پس بگو شما اعتراف میکنید خجالت هم می‌کشید؟ نمیکشید در هر حال اینجا یه چیزی بگید. حث شده و افلا چون مناظره اصلا این رو می تلبن. خب افلا تب تبون. معلوم شد براتون یا نشد یعنی عبارت در واقع دنباله همون بحث با شرک میگه این شریک های شما این کسایی که شما دادید اینا به شما داشتن بهتون روزیتون میدادن اینا شما رو حفظ میکردن اینا بودن همه کاره میگه قطعا میگن نه خدا این کار است. میگه حالا که خودتون اعتراف میکنید، پس خجالت نمیکشید، از خدا نمی تو بی خشم کن. الله، رب و کمل حق، فماظا بعد الحق، الا الزلال، فآناتوس رفون، فآناتوس رف. یعنی آنها به معنای کافی است. حال است از برای توصرفون توصرفون یعنی تودلون برگردونده میشید یعنی از راه حق بازگردونده میشید یعنی فکی فتودلون پس در چه حالی شما دارید اینطوری عقبگرد میکنید برمیگردید در چه حالی شما اینطور دارید به انحراف میرید خب. فزالکم الله این زالکم کمش حرف خطابه کمش چیه بگید حرف خطابه یعنی به شما داریم بگید درست همون یرزق و کم. کم حرف خطابه زالش اون زالکش مشخص شد براتون اسم اشارش برمیگرده به خداوند یعنی در واقع برمیگرده به فاعل انجام دهنده کارهای ثابت یعنی باید اینطور بگیم الفاعل لهاذل افعال ذلکم یعنی آن آن یعنی این در واقع به اعتبار عظمتش زالب گفته شده یعنی این کسی که این کارا رو میکنه الرازق المدبر المالک المحی ها این الفائل و لحاظه الافعال الله گرفتید یه نه؟ این فافای نتیجه است میگه پس نتیجه میگیریم کسی که این کارا رو انجام میده خداست خود شما اعتراف کنید در نتیجه گیری نسبت به بحث قبله فزالکم الله ربکم صفت الله الحق صفت دوم شد بله خداست خدایی که رب شماست و حقم نتیجه است دیگه. میگه پس اون کسی که این کارا رو انجام میده خداست. بوتهای شما نیستن. آخر بحثه دیگه. یعنی فا فای نتیجه است. پس بنابراین انجام دهنده تمام این امور آهای مردم. این کم یعنی آهای مردم. انجام دهنده تمام این امور. یعنی زا. الله. رب باشه. ولی بیدار کردن اینها وزیفه. نه نه میخواد بگه الله الله رو میخواد بگه میگه انجام دهنده اینها خداست بتخای شما نیست الله خبره میخواد بگه انجام این همش بحث با سابقه پس انجام دهنده همه اینها بگید خداست این نتیجه است نتیجه بحثه میگه پس قبول داری این فا یعنی پس پس قبول دارید نتیجه میگیریم الفاعل لزالكه الفاعل للحاضر آب، اونی که این کارها رو انجام میده الله خداست بعد برای عظمت خدا دو تا صفت آورده ها کدومه یک رب خو دو بگو یعنی بحث بحث باز توحیده یعنی همون فس اللهه میگه خواهند گفت الله بهشون بگو خجالت نمیکشید کشید پس چرا از خدا نمی بعد میگه بنابراین آه بحث ما اینه که همه این کارها رو خدا انجام میده نه های بگید شما بت کاری نیست فمازا بعد الحق از این باز نتیجه است بنابراین حالا که ثابت شد همه کارها رو خدا میکنه همه چی دست خداست فمازا بعد الحق از زلا از حق بگذری به جز گمراهی چیزی نیست. یعنی بین حق و باطل فاصله‌ای نیست. حق تموم شد می تو دل باتل. درست شده نه؟ یعنی حق این است که خدا این کارها رو کرده. از این بگذری یه ذره بری اونورتر می تو باطل. حالا دیگه فرقی نمی کنه. شرک کم باشه زیاد باشه هر شما باشه یا حق است یا باطل است وسط بگید نداره یعنی نمیتونید شما بگید نصف قول ما حق نصفش باطله ما که خدا را قبول داریم بطا هم بگید قبول داریم میگه نه یا خدای محس یا باطل این دنباله همون بحث ها یعنی شما نمی داریم بگی ما پنجا درصد قولمون درسته ما که قبول داریم خدا آفریده ولی گتارم قبول داریم میگه نه از حقیه زره اون ورتر میشه چی؟ باشه در آفرینش شریک نمیدونستن در عبادت شریک نو عبادت شون میکرد نه باشه فرق نمیکنه نه نه نه نه اصلا بحث اون نیست مخواد بگه اونا هیچند مخلوق خدا اصلا بحث این نیست که اونا رب نیستن اصلا باید اون از محتوا در میاد بحث اینه که این عالم هستی تدبیر اونها شرک در فایلیت هم داشتن اونها رو فاعلان میدونستان درو خیلی از امورات عالم رو به دست اونها میدادن نما در اینو کاری هم هستن میخواد بگه هیچ کارن اون که تمام این کارا رو انجام میده الله اونی که تمام این کارا رو انجام میده خداست پس هیچی دست غیر خدا نیست توحید فایدی درست شد بعد این خدا رب شما هست حقم هست از این بگذرید در هر موردی از این بگذرید برید اون طرف چیزی رو در مقابلش قرار بدید میشه زلاب. میشه زلا یعنی فقط مخواد اینجا الله لذا فرمود فسیقولون الله فضالکم الله رب بکم الحب. باز فا نتیجه میگیره میگه فمازاب الا الحقه اللزلال. این مازا بعد الحق یه ترکیب بنویسید براش مازا رو بنویسید مقتدا یعنی ایوشه یه. به عدل حق بنویسید متعلق به موجودون به عدل حق بنویسید متعلق به موجودون ثابتان خبر الا الا استثنائیه از زلال از زلال بدل از زمیر مبتدا که در خبر است از زمیر مبتدا که در خبر. یعنی بدل از اون زمیر داخل موجودون گرفتید یا نه؟ بدل از اون زمیر پس میشه چی؟ مازا ایوش ای این موجودون بدل حق ها؟ یعنی لیس شیعون موجود حق مازا استفهام دیگه منه نفیه استثناء مفرده یعنی لیس شیعون موجودن بعد الحق الا زلال درست شده نه گرفته چی شد این طور لیس شیعون موجودن بعد از حقه الا از زلا یعنی چی؟ یعنی نیست چیزی هیچ چیزی نکرده در سیاق نفعه مستثامه عام میشه نیست هیچ چیزی موجود بعد از حق یعنی از حق بگذاری هیچی وجود نداره جز یه چیز کدوم؟ بگید از زلا یعنی از زلا از زلا بعد از از این زمین و قبعی که توی موجودونه برمیگرده به شهر برمیگرده به محاصم هیچی بعد از حق نیست جز گمراهی جز زلالت الا زلال داره شده نشده پس ای که خدا گرفت چیه؟ اینکه شما پاتونو از خود حق بذارید اون طرف به جز زلالت هیچی نصیبتون نمیشه از این حق این حق یعنی کی؟ بله داره ها کی بود این حق خدا گفت چی؟ زالکم الله و رب و حق از این حق اگر یک قدم برید اون وقتر بگید گمداریست توحید محض فقط حق است فمازا و عدل حقه الا زلالی حد وسط نداره فعنات اصرفون بنابراین پای نتیجه است بنابراین چگونه شما منحرف شدید آه؟ چطوری شما کج رفتید یعنی از حق گذشتید و به باطل رسیدید باطل چی بوده؟ بطا از حق گذشتید و بگو بعد تسرفون میگه ها توصرفون یعنی برگردانده شدید یعنی یک کسی ها شمار سرتون رو برگردانده کی بوده بگید شیطان منباب تحریرش از نام مرده نشده یعنی کیفه بگو یسرف و کم از و چجور شیطان شما رو را از راه راست به در ورده برد؟ گرفتی تو گردوخته. گرفتین چی شد یعنی؟ فزالکوم الله ربک وملحق وما ذا بعد الحق الا الظلال و فعنا تسرفون. بحثیه، ببینید این اصلا نوعی از دیوار، دیوار یعنی گفتگو. درست شد؟ گفتگوست. خدا داره پیامبر رو برای مناظره و گفتگو با مشتکین در این آیات آماده میکنه پاسخ اونا رو نقل میکنه جواب پیانبر رو نقل میکنه آخرش هم از ماحسل حوار و گفتگو نتیجه گیری میکنه کدوم؟ <تصفيق> <تصفيق> <محبه> <تصال> <تصال> بله داره ولی بله ترکیبش دقیق نیست. دقیق نیست دقیق نیست لازمه بگم ولی دقیق نیست که بخواد به عنوان ترکیب ذکر بشه مازا بعد الحق الا الزلال یعنی نیست بعد الحق الا الزلال کزالکه کزالکه حقت کلمت رب بک هلاللزی و انه هم لایومنو این هم نتیجه یاد اتمام موجهد شد. کزالکه یعنی چی؟ یعنی این چنین ها؟ کزالکه حقت کلمت رفتی یعنی کزالک الحق یعنی حقا کزالک معلومه مخبول و مطلقه یعنی ثابت شدن این چنین یعنی الان با استدلال ثابت کردیم یعنی کزالک اشاره به استدلال داره یعنی اثباتی این چنین حق قد کلمت ربت سنت پروردگار تو سخن پروردگار تو بگید به اثبات رسید کلمت رب علالذین فسقوا بر این کسانی که بگید فاسق شدن از راه بدان شدند یعنی همین مشرکین علالذین متعلق است به حق فسقوا متعلق است به حقت کزالکه حقت آه. این کزالکه گفتم بوده چی حقن کزالکل حق اثباتی این چنین اثباتی این چنین اثبات شد سخن پروردگارت در شد حقت کلمت رب بکر فسقو فسقو یعنی تمرد، یعنی کفرو یعنی نافقو یعنی اون اونهایی که بگید از راه به در شدن کذاله که حقید کلمتو ربکالالذین فسقو انهم لا یومنون این ان هم لا یؤمنون هم اسم الناس لا یؤمنون خبرش ان هم خونده شده درستو اگر اگر کلمه به معنای سنت باشه قانون باشه درستو معنای آیه میشه این چنین سنت خدا ثابت شد این چنین حرف خدا به کرسی نشست درست شد. حرف خدا چی بود انهم هم لا يومنون. که اینا ایما نمیارن یعنی با همه استدلالیان هم که کردیم اینا آدم بشه نیست یعنی انا هم لا يومنون بشه بدل از کلمت و رب بک. یعنی اینا ایمان نمیارن چون خود خدا هم گفته بود که اینها با انادشون و برگردان اینها توسط شیطون اینا آدم بشه بگو نیستن درست؟ این بشه انهم لا یعمنون بشه بگی بدل از مسترد. کلمت و رب محلم محفو تحویل و مصدب بدل است. یعنی خدا میدونه کلمت و یعنی علم الهی سنت الهی که عبارت هست از ادم ایمان اینها، این ثابت شده یا نه این کلمت و به معنای عذاب باشه چون کلمه به معنای عذاب هم اومده کزالکه حقت کلمت و یعنی این چنین ثابت میشه عذاب خدا یعنی وقتی ما این همه بایه اینا استدلال کردیم حرف زدیم گفتیم، ثابت کردیم اینا ایمان نمیارن پس عذاب الهی بر اینها این چنین ثابت میشه دارو چو؟ کزالکه حقت کلمت و رب یعنی عذاب و نفس هم. یعنی اتمام حجت شد این چنین اتمام حجت بر فاسقین شد چرا؟ چرا اتمام حجت شد؟ چون لنه هم لا جومه. این اون موقع انا هم لا یومنون بشه لعنه هم لا یومنون حس و قبل از انا هم نمیشه چی؟ پیاسی درسته ده نشد؟ انا میشه چی؟ لعنه هم. چرا عذاب بر اینها ثابت شد؟ چون لعنه هم لا یومنون پس اگه کلمه به معنی سنت الهی علم الهی باشه ها؟ این انهم لا یؤمنون میشه چی بگو یعنی بیغان بر قصه نخور اینو آدم بشو نیست نه خدا اینو میدونه اگر به معنای عذاب باشه میشه لعنهم لا یؤمنون میشه در واقع منسوب به نزعه خالص خب باز دوباره برمیگرده به بحث با مشرکین قل هل من شرکائکم من یبدع الخلقه سمه یعیده قول حل الله قل الله یبدوالخلق سمه یعیده فعنا توفکون مثل قبلیست عنا توفکون یعنی عنا تصرفون عنا به معنای کیفه هست توفکون هم به معنای تصرفون یعنی تو ادلین قول حل من شرکای کن من حل من شرکایكم من یبدعو ها؟ و ببینیم من من بعضیه است؟ من بنه بعضیه شرایطش چیه؟ یک باید با صدر نکره در بیاد. دو مدخولش باید فاعل یا مفعول یا مبتدا باشه. درستو؟ فاعل یا مفعول یا مبتدا باشه پس من زایده سه تا شرط داشت یک بعد بر سر نکره در بیاد مدخولش باید فائل یا مفعول یا مبتدا باشه کلام باید نفی یا شبه نفی باشه اینجا البته حل هست شبه نفی استفاده. خب باید ببینی فائل و مفعول یا مبتدا هست یا نیست شرط دوم باید ببینی که آیا بگید مدخولش نکره هست یا نیست هل من شرکای من درست به نظر میاد من من چیه؟ بعضی از میگه بعضی از این شرکای شما هل من شرکای کن من یبده و اونا خدایانشونه تقسیم میکردن دیگه این خدای باد بارون خدای خیل شرد فلانه ده. میگه تو این خداهاتون کسی هم هستش که کار خیلقت انجام بده یبدو الخلقه سمه بعد سمه یویدو بعد دوباره بگید برگردونه آه نشد یه شد یعنی تو خداهاتون این کاره هم هست حل من شرکای کن من منه چی شد؟ بعضی شد من شورکای کنم من یبدعو فیل مزاره ها. یبدعو الخلقه الخلقه یعنی المخلوقه آه. این مخلوقات رو آغاز کنه سمه یو ایدو سفت کار کنه؟ اعاده کنه همه بحث اونا سر اعاده بود این اعاده رو ما تو بحث باشه ها اونا معاد قبول نداشتن ولی خب اگه قبول کردین که ابداع خلقت بعد خلقت با خداست پس اعادهشم هم جالب از این نظر میاد که خلقت چیز معاد هم باید جسمانی باشه چون اعاده ی هر چیزی همونه معاد اصلا کلمهش یعنی دادن برگردوندن پس باید همون برگرده یعنی خود همین آیه یه سمه یوید و هو هو به کی برمیگرده به خلق خلق ماده بود جسم بود بیکره بود انسان بود خب پس اعادش هم یعنی برگردوندن همون نگرفتید من چی گفتم پس باید اونم چی باشه مادی باشه جسمی باشه سمه یویدوه سمه با خاطر اینی که یه مدت زندگی میکنه تو این دنیا بعد دوران برزخ هستا قیامت سمه یویدوه میگه آیا در بین شرکاتون کسی هست از این کارا بکنه؟ یعنی چیه؟ اونا جواب میدن این کارا رو میکنه یا نمیکنه؟ قطعا میگن نمیکنه چون بالا گفت بعد میگه قل بس به اینا بگو اللهو یبدعو اون بالا من بهتون گفتم الله و یفت ال کل نذاره اینجا ببینین الله و یبدال خل. نب یبدول خلق الله یبد الله خلقت مفید حصره. بگو خداست که فقط خلق رو بگید میآفرین از میده او و دوباره هم بگید ا بشون. خداست که ابتدا و انتهای خلقت به دست اوست. این فاپای نتیجه است بنابراین ان نتوفه کن بنابراین چگونه شما دارید منحرف میشید چطور شیطان افسار شما رو از این طرف به با اون طرف داره شما رو بگید فعن نتوفه کن پس چگونه منحرف میشید شد یا نشد استدالات خیلی عقلانی منطقی و زیبا قل الله یبدون خلق سمعیه و ایده و فنا توفکن. این اون بالا انات تصرفون اینجا انا توفکن. این معادل آوردن ها خیلی کلام رو زیبا کرد پس من من شرکایکم شد من بعضیه خبر مقدم من من من یبدعو مبتدا مؤخر وصلی الله علی نبی جناب